دسته خوبم به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. این کلاس مهمترین کلاس در دنیا هست چون که ما مهمترین کتاب دنیا، کتاب مقدس، کلام قدوس خدا رو مطالعه می کنیم. در درس امروز ما نبوت های حبقوق، یکی دیگر از انبیا و واعظین فصیح خدا رو بررسی خواهیم کرد. حالا لطفاً گوش کنید چون خدا برای من و شما پیغامی داره. این شما و این معلم ما ما بررسی عهد قدیم رو از کتاب پیدایش شروع کردیم و یکی پس از دیگری تمام کتاب های عهد قدیم رو بررسی کردیم تا به انبیار رسیدیم نبی که امروز بررسی خواهیم کرد روش هوشمندانه ی ادبی رو برای رساندن پیغامی که خدا در قلبش نهاده در پیش گرفته ببینید حبقوق نبی نبوتش رو چگونه شروع میکنه ای خداوند تا به کی فریاد برمی و نمیشنوی؟ تا به کی نزد تو از ظلم فریاد برمی و نجات نمی دهی. چرا بی انصافی را به من نشان می دهی و بر ستم نظر می نمایی و غضب و ظلم پیش روی من می باشد؟ منازعه پدید می آید و مخاسمت سر خود را بلند می کند از این سبب شریعت سوس شده است و ادالت هرگز صادر نمی شود. چون که شریران عادلان را احاطه نمایند، بنابراین ادالت معود شده صادر می گردند. در میان امتها نظر کنید و ملاحظه نمایید و به شدت متحیر شوید زیرا که در ایام شما کاری می کنم که اگر شما را هم از آن مخبر سازند باور نخواهید کرد زیرا که اینک آن امت تلخ و تندخو یعنی کلدانیان را برمیانگیزانم انگیزانم که در وسعت جهان می تا مسکنهایی را که از آن ایشان نیست به تصرف آورند، ایشان حولناک و مهیب می باشند. حکم و جلال ایشان از خود ایشان صادر می شود، اسبان ایشان از پلنگ ها چالاکتر و از گرگان شب تیزروترند و سواران ایشان جستوخیز می کنند و سواران ایشان از جای دور آمده مثل اقابی که برای خوراک بشتابد می پرند. جمیع ایشان برای ظلم میآیند عظیمت روی ایشان به طرف پیش است و اسیران را مثل ریگ جمع می‌کنند و ایشان پادشاهان را استهزامی نمایند و سروران مسخره ایشان میباشند بر همه قلعه ها می‌خندند و خاک را توده نموده آنها را مسخر میسازند پس مثل باد به شتاب رفته عبور می‌کنند و مجرم می‌شوند این قوت ایشان خدای ایشان است ای یهو و خدای من ای قدوس من آیا تو از ازل نیستی؟ پس نخواهیم مرد ای خداوند ایشان را برای داوری معین کرده ای و ای سخر ایشان را برای تعدیب تأسیس نموده ای چشمان تو پاک است از اینکه به بدی بنگری و به بی انصافی نظر نمی توانی کرد پس چرا خیانتکاران را ملاحظه مینمایی و هینی که شریر کسی را که از خودش عادلتر است می خاموش می مانی و مردمان را مثل ماهیان دریا و مانند حشراتی که حاکمی ندارن می گردانی. او همگی ایشان را به قلاب بر می کشد و ایشان را به دام خود می گیرد و در تور ها را جمع می نماید. از این جهت مسرور و شادمان می شود. بنابراین برای دام خود قربانی میگذارد و برای تور خیش بخور میسوزاند چونکه نصیب او از آنها فربه و خوراک وی لذیذ میشود آیا از این جهت دام خود را خالی خواهد کرد و از پیوسته کشتن ها دریغ نخواهد نمود بر دیدبانگاه خود میستم و بر برج بر پا میشوم و مراقب خواهم شد تا ببینم که او به من چه خواهد گفت و درباره شکایتم چه جواب خواهد داد پس خداوند مرا جواب داد و گفت رویا را بنویس و آن را بر لوحا چنان نقش نما که دونده آن را بتواند خواند زیرا که رویا هنوز برای وقت معین است و به مقصد می تابد و دروغ نمیگوید اگر چه تاخیر نماید برایش منتظر باش زیرا که البته خواهد آمد و درنگ نخواهد نمود اینک جان مرد متکبر در او راست نمی باشد اما مرد عادل به ایمان خود زیست خواهد نمود به درستی که شراب فریبنده است و مرد مغرور آرامی نمیپذیرد که شهوت خود را مثل عالم انوات می افزاید و خودش مثل موت سیر نمی شود بلکه جمعی امت ها را نزد خود جمع می کند و تمامی قوم ها را برای خیشتن فراهم می آورد پس آیا جمعی ایشان بر وی مثلی نخواهند زد و تعنامیز بر وی نخواهند آورد؟ و نخواهند گفت، وای بر کسی که آن چرا که از آن وی نیست می افزاید؟ تا به کی و خیشتن را زیر بار رهنها می نهد؟ آیا گزندگان بر تو ناگهان بر نخواهند خواست؟ و آزارندگانت بیدار نخواهند شد و تو را تاراج نخواهند نمود؟ چون که تو امتهای بسیاری را غارت کرده ای، تمامی بقیه قوم ها تا را قارت خواهند نمود به سبب خون مردمان و ظلمی که بر زمین و شهر و جمیع ساکنانش نموده ای وای بر کسی که برای خانه خود بدی را کسب نموده است تا آشیانه خود را بر جای بلند ساخته خیشتن را از دست بلا برهاند به این ترتیب نبوت حبقوق شروع میشه به حبقوق نبی منکر خدا گفتن و یا نبی که یک علامت سوال در ذهنش داره. به نظر میرسه که او دائما در حال پرسیدن سوالاتی هست. یک نفر کارتونی به من نشون داد که یک آمارگیر دم در ایستاده بود و میگفت من سوالاتی دارم. فقط سوال، نه جواب. مردم در مورد حبقوق نبی هم چنین احساسی داشتند. اونها معتقد بودند که حبقوق مردی که مرتبا سوال میکنه و جوابی برای اون نداره. من واقعا این نبی رو احساس و درک می کنم چون وقتی در کالج و دانشکده بودم علامت سوالی در ذهنم داشتم. راستش از من خواستم که دیگه به دانشکده نرم چون زیاد سوال می کردم. من همیشه حبقوق رو دوست داشتم چون وقتی شروع به مطالعه حقوق نبی کردم به نظر می رسید که مردی رو پیدا کردم که مطمئنا سوالات زیادی داشت و به نظر نمی رسید که به خاطر سوالاتش تنبیه بشه. وقتی دیدگاه تاریخی از حبقوق نبی داشته باشید، خواهید فهمید که حبقوق از نظر مفهومی که قبلا اشاره کردم یک استثنا هست. کتاب حبقوق از این قاعده مستثنا است که قبلا گفتیم نبوت انبیا به لحاظ ترتیب تاریخی قرار نگرفتند. کتاب حبقوق درست بلافاصله بعد از ناهوم میاد. حبقوق درست بعد از سقوط نینوا به دست ماتها و بابلی ها زندگی میکرد. آشوری ها دیگر ابرقدرت جهانی نبودند در دوره حبقوق بابلیها ابرقدرت بودند حبقوق میدونه که به محض اینکه ها از نینوا فارق بشن به طرف اورشلیم خواهند رفت و اونجا رو فتح خواهند کرد انبیایی مثل ناحوم به قوم خدا گفته بودند لازم نیست نگران آشوریها باشید اما این مطلب رو در مورد بابلی ها به یهودا نگفته بودند تمامی این انبیا از جمله اشعیا و ارمیا گفته بودند شما توسط بابلیها مغلوب خواهید شد و به اسارت برده خواهید شد و هفتاد سال بعد از اسارت باز خواهید گشت پس اون عد از قوم خدا که کلام خدا و اراده خدا رو میدونستند میدونستند که بابلیها در راه هستند هبقوق میدونه به محض اینکه بابلیها و ماتها نینوار رو فت کردند به طرف اورشلیم خواهند اومد متوجه میشیم که هبقوق با ارمیا معاصر بوده او احتمالاً در زمان یهویاقیم پادشاه اورشلیم زندگی میکرده. یهویاقیم پادشاهی بود که برای اولین بار اورشلیم رو تسلیم کرد. این نشون میده که هبقوخ در دوره بیداری در زمان حکومت یوشیا هم زندگی و خدمت میکرده. او همینطور با دانیال هم معاصر بوده. هبقوخ در زمانی که بابلی ها برای فتح اورشلیم می‌آمدن در اونجا زندگی میکرد. این همون شرایط تاریخی هست که ارمیا نبی منفور هم در اون شرایط معزه می کرد وقتی ارمیا معزه کرد که بابلی ها به عنوان داوری خدا در راه هستند مردم از ارمیا نفرت داشتند و تصمیم گرفتن دور رو چون او معزه می کرد که اورشلیم نابود خواهد شد حالا حبقوق میدونه اگر پیغام خدا رو در این زمان معزه کنه او هم مثل ارمیا مورد آزار قرار خواهد گرفت هبقوق احتمالا احساس می میکنه حتی بیشتر از ارمیا هم مورد آزار قرار خواهد گرفت چون او نبی نبود او رهبر ارکستر بود او رهبر یک گروه ارکستر لاوی بود در اول تواریخ 23 گفته شده که داوود کاهنان رو به دستجاتی تقسیم کرد که ضمن اون چهار هزار نفر از لاویان رو انتخاب کرد که هیچ ای به جز نواختن آلات موسیقی که داوود برای پرستش خدا می ساخت نداشتند وقتی کتاب مزامیر را بررسی می کردیم گفتیم که بسیاری از مزامیر توسط لاویانی نوشته شدند که تمام وقت کار سرود و موسیقی میکردند. این لاویان همینطور سازندگان سرودهای مقدس هم بودند. اونها بعضی از مزامیر و سرودها رو نوشتند و آهنگهایی که در پرستش خدا مورد استفاده قرار می گرفت توسط اونها ساخته شد. هبقوخ هم یکی از این موسیقیدانهای هرفهی ای بود که در خدمت سرودهای مقدس بود. حالا خودتون رو به جای قرار بدید خدا به او پیغامی میده و احتمالا این مصادف با زمانیه که ارمیا در سیاهچال بود و نمیتونست اسمو موعظه کنه. شاید حبقوخ پیش خودش فکر میکرد اگر من این پیام رو موعظه کنم اونا من رو هم میگیرن و به همراه ارمیا به بند میکشند. پس حبقوخ به عنوان یک هنرمند و موسیقیدان به عنوان شخصی خلاق از ادبیات عجیب و زیبایی استفاده میکنه که پیغام خدا رو به اون ترتیب موعظه کنه. میتونید کتاب حبقوق رو یک مناظره ابتکاری بگید. بلاوازی میشه گفت حبقوق یک مناظره با خدا را به تصویر میکشه. حبقوق برای قوم خدا که تا حد مرگ ترسیده بودند و در وحشت زندگی میکردند. موعظه میکنه. زمانی بود که دیدبانان آماده بودند و دائما به صداها گوش میدادند و علائم آمدن ارتش بابل رو زیر نظر داشتند. حبقوق اینطور طور میکنه. می‌کنه. که در دلتون سوالاتی دارید. من هم در دلم سوالاتی دارم. و میخوام از خدا بپرسم مثلا سوالاتی مثل این خدایا چرا وقتی میدونی بلا میاد هیچ کاری نمی کنی؟ چرا از مردمی که خیلی از ما شریرتر هستن برای تنبیه ما استفاده میکنی؟ چرا چرا چرا و بسیاری چراهای دیگه و هبقوخ تمامی این سوالات رو میپرسه؟ حالا راستش رو بخواید این نظریه شخصی من در مورد هبقوخ هست من فکر نمی کنم هبقوخ یک نبی منکر خدا بوده من فکر نمی کنم او کسی بوده که سوالات زیادی داشته من ایمان دارم که او مردی بوده که جوابهای زیادی داشته کنت استراکن یک خادم سیاستمدار بزرگ گفته شاید کسانی که عادت به سوال کردن دارند خیلی دنبال جواب نیستن بلکه میخوان سوالاتی رو بپرسن که کسی دیگه سوال نمیکنه من فکر نمی کنم این در مورد هابغو صحت داشته باشه به نظر من جواب سوالاتی که مردم می‌کردند می‌دونست. تنها همون سوالات رو می‌پرسید، بلکه به اون سوالات جواب هم میداد. سوالاتی که مردم می‌پرسیدند و هبقو با الهام از خدا به اونها جواب میداد، شکل منحصر به فردی از ادبیات و اساس پیام کتاب هبقو هست. شبانی رو میشناختم که از او دعوت شد در یک برنامه مناظره تلویزیونی کلام خدا رو به مردم تعلیم بده. میزبان اصلی این برنامه یک خانم بود. بعد از چندین سال یک بار این خانم بیمار بود و دوست شبان من پیش خودش فکر می کرد که فرصت خوبی دست داده و امروز میتونه بدون این که به سوالاتی جواب بده مستقیما کلام خدا رو موعظه کنه. این برنامه سالها بود که هفته یک روز پخش می شد. اما وقتی به استدیو اومد در کمال تعجب و ناامیدی متوجه شد که مجری برنامه ی هواشناسی میزبانی این برنامه رو به عهده گرفته. بعد از خاتمه او با اعتراض پرسید چرا حالا که میزبان برنامه بیمار بوده به من این فرصت داده نشد که به تنهایی برنامهم را اجرا کنم کننده برنامه در پاسخ گفت مردم دوست ندارند به هایی که یک نفر متکلم وقت هست تماشا کنند به همین دلیل لازم توی برنامه حداقل دو مجری و سه دوربین وجود داشته باشه و در هر سکانس یکی از مجریان و یا هر دو با هم و فضای استدیو نشون داده بشه در غیر این صورت اگر یک نفر بخواد بلا انقتا صحبت کنه مردم دکمه رو میزنند و کانال رو عوض میکنن در زمانهای بسیار دور حبقوق این حقیقت رو میدونست که هیچکس نمیخواد به یک نفر متکلم وحده گوش کنه شاید حبقوق اولین کسی باشه که این فرم مناظره رو که امروز بسیار رایج هست ابدا کرده باشه بهترین چیز در مورد این مناظره سوالات حبقوق از خدا بود کاری که حبقوق کرد بسیار زیرکانه بود به خاطر این شیوه زیرکانه هنرمندانه مردم او را سنگسار نکردند و بسیار چال ننداختند حبقوق می گفت شما گوش به زنگ دید بانانی هستید که به صدای بابلی ها گوش می بذارید بگم که من چی کار خواهم کرد من یک برج روحانی خواهم ساخت و به بالای اون برج خواهم رفت و به دنبال خدا خواهم گشت تمامی سؤالاتم را از خدا خواهم پرسید او خداست. او همه جواب ها رو داره. من قلبم رو برای خدا باز خواهم کرد و تمامی سوالاتم رو خواهم پرسید. بعد در اون برج روحانی خواهم نشست. اونقدر منتظر خواهم بود تا به سوال من جواب بده. اونقدر کشیک خواهم داد تا خدا به سوالات من پاسخ بده. این روش ای برای شروع موعظه بود. بعد از مدتی حبقوق این طور موعظه کرد. خدا به من پاسخ داد. بذارید جواب خدا رو به شما بگم. وقتی حبقوق سوالاتش رو در برج روحانی از خدا پرسید، سوالاتی که او پرسید، همون سوالاتی بود که در قلب قوم خدا بود. تمامی قوم یهودا اون سوالات رو داشتن. وقتی حبقوق از خدا شنید، جوابهای زیادی برای این سوال بود. اما پاسخی که واقعا به حبقوق کمک کرد در باب دو آیه چهار اومده. این جایی که یکی از عظیمترین آیات کتاب مقدس رو می‌بینیم. این آیه سه بار در عهد جدید تکرار شده. جوابی که عنوان شد این بود مرد عادل به ایمان خود زیست خواهد نمود این جواب خدا به سوالات حبقوق بود وقتی خدا به حبقوق پاسخ داد اولا جواب خدا مربوط به بابلی ها بود خدا به حبقوق گفت بابلی ها قلبشون راست نیست افکار اونها غلطه اونها متکبرند ظالمند، اونها با شمشیر زندگی میکنند و عاقبت اونها همین خواهد بود و به شمشیر کشته خواهند شد اونها نابود خواهند شد و تخم نابودی اونها در قلبهای خودشون هست قلبهای اونها راست نیست این پاسخ خدا به سؤالات حبقوق در بابلیها دشمنان قوم یهودا بود خدا در ادامه جوابش در مورد بابلیها با پیغامی خطاب به قوم خدا با حبقوق صحبت کرد خدا گفت بابلیها خودشون رو نابود خواهند کرد چون بذر نابودی و حلاکت اونها در دلهای خودشونه اما قوم من عادل هستند و با ایمان زیست خواهند کرد. این خبر خوبی بود. چون جواب خدا به قوم خودش معزه ارمیا و اشعیا رو تأیید میکرد که گفته بودن قوم یهودا از اصارتشون باز خواهند گشت. از این نظر جواب خدا میگفت که عادل زنده خواهد ماند و کافیه که ایمان داشته باشند و به پیام انبیا باور کنند. پس قوم خدا وقتی که خدا گفت مرد عادل به ایمان خود زیست خواهد نمود، دوباره خبر خوش بازگشت از اسارت را شنیدند. حقیقتا این خبر خوشی در این زمان بود چون همونطور که گفتم این تأییدی بر های اشعیا و ارمیا بود. این اساس پیغام نبوتی حبقوق بود. خب بیاید این نبی رو بهتر بشناسیم و پیغام بزرگ او رو بهتر درک کنیم. من شیفته ی فرم زیرکانه ادبیاتی پیغام این نبی هستم که گویی اون رو در لفوافهی قرار داده مخصوصاً وقتی پیغامش رو با یک سرودی که خودش ساخته به پایان میبره آیا شما سوالاتتون رو از خدا کردید؟ او تنها کسیه که تمام جوابها رو داره و شما میتونید جوابهاتون رو از کلام او پیدا کنید پس کتاب مقدس رو مطالعه کنید و پاسخ تمامی سوالات مربوط به مرگ و زندگی رو خواهید یافت پیغام حبقوغ برای امروز هم صدق میکنه مرد به ایمان خود زیست خواهد نمود نه با اعمال، نه با قدرت، نه با پول و قربانی تنها با ایمان. امروز با ایمان به او اعتماد کنید. وقتی هبقوق برج روحانی خود رو بنا کرد و منتظر شد خدا جواب سوالهای او رو بده، بهترین جوابی که او از خدا گرفت این بود. مرد عادل به ایمان خود زیست خواهد نمود. خدا این آیه از کلام خود رو برای راه انداختن نهزت بزرگ پروتستان در قرن شانزدهم هم به کار گرفت. متن‌های دیگری هم در کتاب حبقوخ هست که میتونید به اونها گلچینی از باغ بگید. اما بزرگترین آیه نبوت او همین جمله هست. مرد عادل به ایمان خود زیست خواهد نمود. این گلچین‌ها رو میتونیم در متنی که به اون مناظره یا گفتگوی بین حبقوخ و خدا خدا‌گویی ببینیم. یه روز مارتین لوتر در وقت رازگاهان کتاب مقدس لاتین رو می‌خوند. در اون زمان او با الهیات زیادی در کشمکش بود و مشکلات روحانی زیادی داشت. او رومیان یک هیفده رو میخوند اونجا که از حبقوق نقل قول میکنه و میگه مرد عادل به ایمان زیست خواهد کرد. اون روز صبح خدا با همین آیه قلب مارتین لوتر رو به شدت لمس کرد و همین منجر به یک نهزت الهیاتی شد. تمامی مذاهب پروتستان از اون نهزت سرچشمه گرفتند. همه در نتیجه اون نقل قول از جواب خدا به هبقوق صورت گرفت که میگه مرد عادل به ایمان زیست خواهد کرد نه با کار نه با پیشرفت نه با کامیابی نه با موفقیت نه با توبه نه با بلکه با ایمان مفهوم این آیه برای مارتین لوتر این بود از یک نظر چیزی که خدا داشت به هبقوق میگفت این بود هبقوق تو منو متهم کردی که هیچ کاری نمیکنم اما میخوام بدونی من مسئولیت دارم و دارم کاری انجام میدم. بابلیها نابود خواهند شد. بذر نابودی اونها در دلشون هست. اما قوم من با ایمانشون زنده خواهند ماند. این کاربرد عملی و شخصی از تجربه برج روحانی حبقوخ هست که اهمیتی اساسی در زندگی من و شما داره. گاهی من و شما با بحرانهایی مثل بابلی ها مواجه میشیم. شاید اکثر شما هرگز زندانی یا اسیر جنگی نبودید که عملا به اسارت برید اما ما موقعیت‌های بحرانی در زندگیهامون داریم وقتی با بحران‌هایی مثل بابل مواجه میشید چی کار باید بکنید بر اساس مثال حبقوخ، شما باید یک برج روحانی بسازید بر بالای اون برج روحانی برید و با خدا صحبت کنید در مورد بحرانتون با خدا صحبت کنید و از او تمام سوالاتتون رو بپرسید و بعد منتظر باشید تا خداوند در زندگی شما کار کنه گوش کنید تا بشنوید خدا در زندگی شما کار میکنه. خدایی رو که در زندگیتون کار میکنه ببینید و بپرستید. به اعتقاد من کتاب هبقوغ ما رو تشویق میکنه که سوالاتمون رو بپرسیم. اما کاری فراتر از اون هم میکنه. نبوت حبقوق ما رو تشویق میکنه که به خدا گوش کنیم دکتر جی کمپل مورگان یک محقق بزرگ انگلیسی کتاب مقدس در مورد کتاب حبقوق بقوقی اظهار نظر کرده. او بعد از اینکه تمامی کتاب رو تفسیر کرده گفته بعضی ها میگن خدا اونطور که در عهد قدیم با مردم صحبت میکرد امروزه صحبت نمیکنه. اما راستش اینه که من به شما میگم اونطور که مردم در عهد قدیم به خدا گوش میدادن امروزه گوش نمیکنند. اگر مردم گوش کنند خدا حرف میزنه. آیا به تأکیدی که در کتاب مقدس در گوش کردن به خدا شده توجه کردی؟ به گفته کتاب مقدس دعا گفتگوی با خدا هست هر گفتگوی دو جنبه داره یک جنبه از گفتگو زمانی که شما با طرف مقابل حرف میزنید و جنبه دیگر زمانی که طرف مقابل با شما حرف میزنه اگر شما معروف به یک گفتگو کننده خوب باشید معمولا منظور این هست که شنونده خوبی هستید در ادامه بررسی نبوت حبقوق کاربرد حقیقی و عملی این کتاب کوچک زیبا گفتگوی شما با خدا هست پیغام حبقوق این کتاب روحانی و جواهر ادبی اینه به خدا گوش کنید تا بتونه به شما بگه چطور در زندگیتون کار میکنه بعد منتظر خدا باشید و در برج روحانیتون بمونید تا خدا به شما نشون بده چطور در زندگی شما کار میکنه اگر این کار بکنید شما هم مثل حبقوق شاید با ترس و ناامیدی شروع کنید اما در خاتمه سرووت خانان پایین خواهید آمد در کتاب حبقوق فقط سه باب وجود داره و باب سه با یکی از گلچینهای کتاب حبقوق خاتمه پیدا میکنه وقتی او در باب یک سوالاتش رو شروع میکنه او ناامیده و در ترس و وحشت هست او سرتاپا سواله و هر حال خدا در باب دو به حبقوق پاسخ میده ببینید باب سه چطور خاتمه پیدا میکنه حبقوق نبوتش رو با یک سرود به پایان میبره. در پایان اون سرود حبقوق میگه برای سالار مغنیان بر زوات اوتار یعنی برای رهبر ارکستر تاکید میکنه که این سرود باید با سازهای زهی خونده بشه. به عنوان یک موسیقیدان حرفه‌ای، حبقوق یک سرود مینویسه و دیگر لاویان رو که در اون سرود همراهی میکنن درباره نحوه خواندن اون سرود راهنمایی میکنه. هبقوق یک موسیقیدان، یک سراینده و یک نویسنده سرودهای روحانی بود اما مهمترین چیزی که باید در مورد کتاب حبقوق مورد ملاحظه قرار بدیم اینه حبقوق کتابش رو با هایی از ناامیدی شروع می‌کنه اما بعد از اینکه برج روحانی خودش رو می‌سازه و گوش می‌کنه و منتظر خداوند میشه نبوتش رو با خواندن سرود زیبایی که خودش نوشته به پایان می‌بره ما نمی‌دونیم برای چه اتفاقی افتاده وقتی اورشلیم سقوط کرد شاید او محکوم به مرگ شده شاید در قول و زنجیر به اسارت رفته شاید در اسارت زنده مونده یا نمونده ما دقیقا نمیدونیم چون تاریخ به ما نمیگه که چی بر سر این نبی آمد اما قلب پیغام کتاب حبقوق اینه که وقتی در پایان کتاب سرودش رو مینویسه او میگه اگر انجیر شکوفه نیاورد و میوه در موها یافت نشود و حاصل زیتون زایه گردد و مزره ها آزوغ ندهد و گله ها از آغول منغته شود و رمه ها در طویل ها نباشد لکن من در خداوند شادمان خواهم شد و در خدای نجات خیش وجد خواهم نمود. یهوه و خداوند قوت من است و پایهایم را مثل پایهای آهو میگرداند و مرا بر بر های بلندم خرامان خواهد ساخت برای سالار مغنیان بر زوات اتار. یکی از زیباترین خصوصیات مقدسین عهد قدیم تعهد اونها نسبت به خداونده. در کتاب دانیال وقتی سه دوست او محکوم میشن به تون آتش انداخته بشن چون مجسمه نبوکت نصر رو سجده نکردن اونها به نبوکت نصر میگن اگر چنین است خدای ما که او را میپرستیم قادر است که ما را از تون آتش ملتحه برهاند و او ما را از دست تو ای پادشا خواهد رهانیم. و اگر نه ای پادشاه، تو را معلوم باد که خدایان تو را عبادت نخواهیم کرد و تمثال طلا را که نصب نموده ای سجد نخواهیم نمود. میبینید اونا حتی نمیدونند که چی بر سرشون خواهد اومد و آیا کارشان فرجام خوشی خواهد داشت یا نه؟ بسیاری از کتاب داستان و فیلم ها پایان خوشی دارند باب ایمان کتاب مقدس، ابرانیان باب یازده، ایمان مقدسین عهد قدیم را توضیح میده بسیاری از اونها به خاطر ایمانشون ادام شدن. کلمه شاهد، کلمه اصلی یونانی برای شهید هست. عملا یک شاهد شهیدیه که به خاطر سیستم ارزشی و اعتقادات زندگیش حاضر بمیره. منظور یک شاهد یا یک شهید این نیست که سالم یا آسوده یا آزاد و زنده باشه. منظور یک شهید یا شاهد اینه که زندگیش رو بده تا شهادتی برای دنیا باشه. حبقوق یک شاهد بود او به شکل زیرکانه شهادتش رو توسط مکالمهش با خدا به دنیا عرضه میکنه حبقوق سوالاتی رو عنوان میکنه که جوابهای اساسی برای زندگی و هدایت قوم یهودا بده او به قوم خدا نشون داد که چطور نشانهای یأس و های سوال ذهنشون رو تبدیل به سرود بکنن وقتی شما سرود حبقوق که در پایان کتابش هست متوجه بشید میفهمید که او یقیناً بی قید و شرط به خدا متعهد بوده خوا خدا او رو نجات بده یا نه سرود پایانی حبقوق نمونه زیبایی از اعتراف بی قید و شرط به ایمان هست گلچین دیگری از کتاب حبقوق باب سه اونجاییه که سؤالات حبقوق جواب داده میشه ملاحظه کنید وقتی این نبی که خدا رو متهم کرد که هیچ کاری نمیکنه، کنه میبینه که خدا در صدت هست که آن سوی دیگر شخصیتش رو نشون بده و غضبش رو بریزه حبقوق اینطور دعا میکنه در حین غضب رحمت را به یاد آورد وقتی خدا به حبقوق رویایی میده که چه بر سر بابلی ها خواهد آورد چیزی که حبقوق واقعاً دعا میکنه اینه ای خداوند بر بابلی ها رحم کن در مزمور 73 نویسنده مزمور آصاف مشکل حسادت نسبت به شریران داشت و او مشکلش رو به حضور خدا میبره در مزمور 73 خدا اجازه میده آساف پنج دقیقه در جهنم بمونه اگه ما پنج دقیقه در جهنم یا پنج دقیقه در بهشت بمونیم فکر میکنم اون تأثیر عمیقی بر ما خواهد گذاشت اگر بتونیم پنج دقیقه در جهنم بمونیم یک کاروان و یک چادر برمیداریم و دور دنیا راه می‌افتیم و یه نهزت بشارتی راه میندازیم آصاف پنج دقیقه در جهنم موند. خدا پایان کار شریران رو به اون نشون داد. بعد از اون بود که حسادت آصاف نسبت به شریران به حس دلسوزی تبدیل شد. وقتی میبینه خدا با شریران چیکار خواهد کرد، او برای شریران دعا میکنه. این اتفاق برای هبقوخ هم میفته. هبقوخ هم دعا میکنه خدا یا در غضب خودت رحمتت رو به بیاد بیار. اینجا یک آیه بزرگ دیگری از کتاب هب در متن این نوشته‌های ادبی زیبا هست، اما خداوند در هیکل قدس خیش است پس تمامی جهان به حضور وی خاموش باشند آیا تا حالا شنیدید که یک گروه پرستشی در ابتدای پرستششون این کلمات رو بخونند من یک بار در یک جلسه در مقابل مهراب پلاکاری رو دیدم که روش این کلمات رو نوشته بودند اما خداوند در هیکل قدس خیش است پس تمامی جهان به حضور وی خاموش باشند یک بار در کلیسای کوچکی یک محقق کتاب مقدس برای تعلیم اومد. این معلم کتاب مقدس یک نمودار بزرگی داشت که تعالیم او رو از نبوتها و پایان دنیا نشون می‌داد. او مرد عجیبی بود. برای نشون دادن نمودارش یک قلاب ماهیگیری با یک قرقره در انتهای اون داشت. وقتی که او تعلیم می‌داد با این قلاب روی نمودار چیزهایی رو نشون می‌داد. اگر بچه‌ها در ردیف اول صحبت می‌کردند، او با قلابش به سر اونها میزد و به اون پلاکاری که روش نوشته شده بود خداوند در هیکل قدس از است پس تمامی جهان به حضور وی خاموش باشد اشاره میکرد خب در واقع این منظور اون آیه از حبقوق نبود حبقوق در این آیه نمیگه آرام باش چون جلسه شروع شده چیزی که میگه اینه خداوند در هیکل قدس خیش است اگر مشکل دارید ساکت باشید در مقابل او ساکت باشید آرام باشید و بدونید که او خداست سوالاتتون را از او بپرسید و بعد منتظر پاسخهای او باشید این چیزیه که مورد نظر حبقوخ هست حبقوخ هم مثل دیگر انبیا پیغام خودش رو با پیغام امید به پایان میبره و در مورد بازگشت از اسارت معایزه میکنه حبقوخ اینطور معایزه میکنه زیرا که جهان از معرفت جلال خداوند مملو خواهد شد به نحوی که آبها در یارا مستور میسازد آیا این جمله به نظر شما آشنا میاد؟ این چیزی که حبقوق از موعظه اشعیا نقل کرده وقتی وقتی حبقوق پیغام بازگشت از اسارت رو موعظه میکنه او به ما رهایی رو توضیح میده که یقینا خواهد اومد. او اینطور میگه برای نجات قوم خیش و خلاصی مسیح خود بیرون آمدی سر را از خاندان شریران زدی و اساس آن را تا به گردن اریان نمودی بالاخره یکی از مهمترین اهدافی که خدا این قوم رو برگزیده اینه که توسط این قوم مسیح تا به جهان خواهد گذشت و خدا باید این قوم رو از اسارتشون نجات بده تا اینکه مسیح او بتونه تمامی دنیا رو از مجازات و ظلم گناه نجات بده این چیزیه که او بهش اشاره میکنه یادتونه وقتی عیسی در قایق کوچکی از دریای جلیل عبور میکرد و طوفان شروع شد او در عقب قایق خابیده بود و شاگردان نزد او حجوم بردند و گفتند آیا برات مهم نیست که همه ما داریم غرق میشیم همه ما داریم حلاق میشیم؟ عیسی در پاسخ گفت ای کم ایمانان چرا شک کردید؟ چرا عیسی به شاگردانش میگه که ایمان ندارن یا ایمانشون کمه؟ نویسنده سرود به این سوال اینطور پاسخ میده هیچ اقیانوسی نمیتونه کشتی رو که صاحب دریاها و زمین و آسمان در آن خابیده ببله اگر عیسی واقعا خدا و انسان بود که او به شاگردان گفته بود که هست پس چطور میشد در قایقی که عیسی در آن هست در طوفان هلاک شد؟ از یک نظر میشه همون چیز رو در مورد قوم خدا در عهد قدیم هم گفت. قوم خدا نمیتونستن کلا نابود بشن. اونها نمیتونستن تماما از روی زمین محو بشن. آشوریها پادشاهی شمال رو نابود کردن و پادشاهی جنوب به اسارت به بابل میره. اما اونها باید برگردن. باید اونجا یک پیغام مثبتی باشه. داستان اونها باید پایان خوبی داشته باشه چون مجبوعا اونها ظرفی هستند که توسط اون شخصی مسح شده وارد این جهان خواهد شد توضیح نجات این قوم از اسارت اینه شما نجات خواهید یافت چون از قوم شما مسیح خواهد آمد کاربرد عملی و شخصی پیغام حبقوق حول محور برج روحانی هست. نمی دانم آیا تا حالا برج مراقبت روحانی خودتون رو بنا کردید وقتی عیسی نتنایل رو ملاقات کرد که مرد مقدسی بود، عیسی حقیقتاً خودش رو به او ثابت کرد. نتنایل زیر درخت انجیر مشغول پرستش بوده و کسی از تجربه زیر درخت انجیر او به جز خودش خبر نداشت. وقتی عیسی به نتنایل سلام میکنه به او میگه اینک این اسرائیلیه که در او هیچ تقصیری نیست. نتنایل میگه منو از کجاش ناختی. عیسی در پاسخ میگه من همون کسی هستم که تو زیر درخت انجیر با او صحبت می کردی و نتنایل میگه تو پسر خدا و پادشاه اسرائیل هستی شما میتونید به این دوستی زیر درخت انجیر بگید نتنائیل زیر درخت انجیر با خدا صحبت می کرد اون درخت انجیر برج مراقبت نتنایل بود آیا شما هم درخت انجیری دارید که زیر اون با خدا صحبت کنید آیا شما هم مکان زمانی دارید که برج مراقبت شما باشه و اونجا منتظر شنیدن از خداوند باشید اگر ندارید برای خودتون برجی بسازید چون کاربرد شخصی و عملی کتاب حبقوقینه برج مراقبت خودتون رو بسازید و بعد مراقب باشید و ببینید که خدا در زندگیتون چطور کار میکنه گوش کنید تا بشنوید خدا در زندگیتون کار میکنه ببینید و خدایی رو که در زندگیتون کار میکنه بپرستید وقتی هبقوق پرسید چرا خدا با جمله ای پاسخ داد که هرگز حتی فکرش را هم نمیکرد. خدا به او گفت اینک جان مرد متکبر در او راست نیست. خواهد افتاد. او داشت در مورد حجوم بابلی ها صحبت می کرد. اما در ادامه میگه اما مرد عادل به ایمان خود زیست خواهد نمود. و اونجا داشت تفاوت بین قوم خودش و کسانی که با ایمان زندگی میکنند با کسانی رو که فقط برای خودشون زندگی میکنند به تصویر میکشید. خدا میگفت و میگه مهم نیست که در چه موقعیتی هستیم، من هنوز هم مسئول هستم. دوستان چقدر آرامبخشه که میدونیم خدا نه تنها از تمامی شرایط ما خبر داره بلکه از ما مراقبت هم میکنه در عهد جدید نویسنده کتاب ابرانیان به ما میگه که بدون ایمان امکان نداره که بتونیم خدا رو خوشنود کنیم. هبقوق بارها اظهار میکنه که عادل به ایمان زیست خواهد کرد. به بارت دیگه زندگی درست زندگی در ایمان هست. دعای ما اینه که این درس ها مطالعه کلام خدا ایمان شما رو تقویت کنه. تا برنامه بعدی امیدواریم که انسان درونی شما تقویت بشه. امیدواریم که شما با ایمان اطمینان پیدا کنید که خدای خالقی که همه چیز رو خلق کرده برای من و شما نقشه‌ای داره و ما رو با محبتی بیپایان دوست داره